بسم الله الرحمن الرحيم قرب قومي ملحدين روز موادات كردين بوخدوه مذهب ملة خيانات كردين بوخدوه مذهب ملة خيانات كردين یاری کفار زهر ای مسلمان هوشدار زهر منوشی نمیدانی حماقت کردیم زهر منوشی نمیدانی امتنان مؤمن مركز نشراتي الصادقين هرنو وتقارير وموعد هاي جهادی را برای شما تقدیم مينمایات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض مردون مفرستا ببنو قرائزا خود استور صلى الله عليه وسلم علیه وسلمی است لا احدكم العصر ابن قرائزا یکی از شما میگن نماز عصر عدان نکنه مگر در بنو قرائزا خوب بئی متوجیب است رسول الله صلی اللہ است بس وقت زنده است عمر صادر میشه به صحابه که به منطقی بنو قرآیزه سفر کنیم مسافی خیلی کم بود گرد مسافن او منطقی بنو قرآیزه سفر کنیم و یکی شما نماز دیگر ادا نکنیم مگر در بنو قرآیزه اینه وقتی که سفر میکنن سوی منطقی بنو قرآیزه در نیمران میباشن یا در نزدیکی منطقی بنو قرآیزه میشن میبینن که آفتاب یک شکل را غروب خوب گ و تابر نماز دیگر ادا نکردند نی در اینجا دربی بینه در اختلاف میان صحابه رحمت اختلاف به یه رحمته که بس صحابه میگن که ما باید نماز ادا کنیم شرابی خاطر که نماز قضا میشه و هدف از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سلم اینه بود که ما اطمین ولی او که قضا مخذاشه و ما باید خدا بر چی براسانیم بنویس عادت رسول بود که شما با سرعت خدا براسانید هدف بس بود که شما خدا با سرعت لومان نکن خدا براسانید حد افر رساله گفت که اتا نمازم قضا شما باید خدا چی باید دارستنده برو قرائزه این نمازه قضام شد به اونجا میخانند ده ای دو صحابه در زندگی رساله صاحبه اختلاف کردن ای ده ای نمازه ادا کردن ای ده ای نکردن وقتنو برو قرائزه رسیدن باز وقت رساله صاحبه امد ایره بر رساله صاحبه ایره بازگو بیه دو شدیم هر دو دسته فادسه در سوا و است. یعنی کسایی که گفت خدا فی بد کی ما خود را بررسی میکنیم کسایی که بود خدا فی بد کنیم خود را بررسیم. پس این درون جه سه‌هایی که گر تکشیر نکردن سه‌هایی که دیگر نگفتند که دموکراتیا، سیاست، فاشک، سیاسی، مطلقان چیز رحم باد. اصل ما در اسلام میشه بیایستیم که ك... آه... اسلام میشه در مسائل اختلافی فقهی یا میشه بعد دوست داشته باشیم منایش قاید پیشتنی باشه. در مسائل اختلافی، مسائل, في مسائل, في مسائل اختلاف في قيد إس مسائل, مسائل اختلاف في قيد. دري مسائل كذا در اسلام جايش وجود داره صحابي ما إن خود اختلاف درسنا بسال مسائل. أنا برضه بفترة درسنا بعض مسائل ما صحابي ما نقدر اختلاف بيدا كرنا. مثلاً بقولي مثال، در قزيم ميراث ما در كلان. كاي كسيكي ما در كلان يزندب وشة، الميراث ميبران ميبراني. خذير لو بقولي سجل خذير نميفاهمي. بس گفت باش کم صحابه را جمع که ما سوابق پرسان کردیم. ام چون باز قضا میشه که بر اومار اول خطاب معلوم نبود. دیگه صحابه پرسان میشه اون یعنی قضیه قضا یکی مثلا, مثلاً, مثلاً وقتی که رسول الله صلی الله علیه که در یک جایی که در سرزمینی که تعاون میایه، او شما داخل نشین، و کسیم که در اون جایی اونجا باید بیرون نشین. این اول خطاب نمیفهمد. وقتی که شام رسیدن نزدیک شدن، د که شام در این جا و ولایت خطاب آمده. و جمع کردی کوچیک کنیم عبد الرحمن بن عوف گفت ما بس اساسا می شنیدیم البته زمین تقون و شما داخل نشین و و از کسی بیرون نشه پس ما رو خطاب عقب نشینی کرد ولی خاطر که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا در مسائل فقهی گنجایش اختلاف دارند اختلاف و ان دار وجود داره در بعض مسائل که اختلاف و تنوع است رسول اکرم یک کوارچن بچندین قسم انجام دادن در بعض مسائل زعیف و قوی وجود داره. مثلا بگونی ای ای مثلا اینی مثلا زعیف است اینی مثلا قوی است حال در این مثلا آمده که مثلا در وقت خواندن نماز مثلا ایک دس زیر ناف می مانا دس سر سینه دس زیر ناف بین ناف و بین سینه یکی دس باز می کنا مقصر ما شیع مقصر مالکی دائره جماعت امام مالک ایک روایت نمی بل کارمازم مالک بمیه است امام مالک بمی است که باید نماز خانده سو در همچ مسائل موقف ایک مسلمان باید چی باشه موقف مسلمان نمی در همچون مسائل حوالی که یکی یک از یک که انسان درده اجتحاط می رسه ایک انسان مثلا جاہل آدم گفتا میتنه که بعض مسائل شریر درست نمیتنه مثلا استنباتی که قابل اصل در اسلام هم این است که امسان اسلام می خواهد تعصب از تو دور کنه تعصب در اسلام مثلا تو جایش تعصب به اسلام دارم من ایس دین ما به اسلام متعصب ازم در یه چه نیست اما ما مذهب مثلا بگونیم مثلا ابو عانیفه رحمی اللہ صدیمان شافیر رحمی اللہ ای مردم ها کسید این ها عیمی دین است در یه چه نیست خواهل مثلا سوال به این پیدا میشه که مردم قبل از ابو عانیفه رحمی اللہ در کدام مذهب بودند؟ مردم قابل دیما رسول الله بین ما و رسول الله صلی خیلی مسافر زمانی است. عشتوت سال عشتوت سالی زمانی است. اصل بیاست که رسول الله صلی میکنه وقتی وفات میکنه رسول در علمیت فرق میکردند. باز صحبه در سنکی در علم میراث متخصص بوده که در اجل مختلف فهم صحبه فرق میکرد. میشه بعد از این هاسته استه دایره اسلام که واسیش و در اختیار وکیز بنا مذهب وجود نداشت من مذهب که ما پیراهو فلانی هستم پیراهو فلانی. صحابم اول خراسان سنبود کوکلگی مصدره تشیب بود پرسان می کردند میکردن بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کامد در مردم صحابه پرسان می کردند و خاطر نکسی بودن که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از صحابه تابین آمدند که در مجلس صحابه بودند در جدید بروز کرد. که دلیل هم شکل نس وجود رو از قرآن و سنت. باید مطمئن دهی شده، هاض قیاس قرار میده. درم که مسائل خامقا اختلاف رخ میده مسلک حدیث رسول الله صلی دو علیه و آله میگن بدو بردوش. رسول الله میگاردو گروهی که در ثواب هست، نه بردوش. و بردوش، بردوش از هوا و نیست. هر کس فهم خود بردوش میکنه. ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، دیگه ائمه مذاهب خیلی بودنمون موضوعی رحم الله اینا از خود مدارس خاص داشتن مثل مدارس که باشی داره مثل پانتونه مدارس خاص داشتنی مسائق تدریس میکردن امی شکل اینو امو فهم اجتحادی که از بیرون کردن من منعیس مذهبی گنجاینده شد در کتاب این نکل که در بعض مناطق مثلا کسی چون در اواخر در تقرن سی و چار پاین مردم اکثر از پانستانت در درش نمیرفتن آیستایستا اینو شکل ازی آمد که مردم باز که اتفاق و میکندن گم مذاهی به اتفاق کنن. حال سوال بیای پیدا میشه که ایا تمام مشایل که بانی فره مولای استنبات کرده، برداش کرده، ایا خلیج صحیح است؟ انسات فیسات؟ در حال اختلاف بین با بانی فهم شافی وجود دارن؟ ما بیایستیم که من هایی مسلمان، ما بیایستیم که ما ابو ابوحنیفه، شافی، مالک، احمد، عبدالله، مر رحمت کرایم میکتیشتن. اینا ایمیه دین استن و کشاورزان که الله جز البرناد قبول و پذیرش در امت، این وقت از از پرستیش در امت چیکار؟ دل الله از اوجری نیمت ببرش نارزانی کرد، نیمت ببرش نارزانی کرد. خالص سوال بیای پیدا میشه که در تمام مسائلی نه چیه؟ اصلا در سوابستن ما باید مثلاً ما طرف ترف مقابل باید بکنیم به شراب بیای خدای قایر در راستا اون کس معصوم نیست. و مشایعش تو بعد در فهمیدگان می باشد. خب آل سوال به پیدا میشه که مثلاً لگرک مسئلهای در, در مذاهب هنفی. یک مسئله رمی ای مخالف مطلقاً مخالف با حدیث می باشه نه؟ داری یک مسلمان چی باشه؟ آیا مواقف ما یه باشه که مثلا ما با نیفار بکو بیم نه؟ اونیفار حم ولای کس؟ ای اولمای کس؟ اینا مطلقاً مخالفت رسول الله صلی الله علیه و نبود. حدفشان ای بود که خدمت به امت بود. و خواهم خواست در فهم حدیث بعض وقتا. اجتبانی خود باخد خطا صادر میشه بس امام مالک رحم اولاد نقاول میکنه میگه که غیر زمین صاحب همین قبر نیست با قبر رسول الله اشاره میکنه دیگر هر کس سخنش گرفته میشه و دیوار زرا میشه خیر است رسول الله صلی الله علیه و سلم این وقتی که مصادر شریعت پیش قرآن قران سنت است اجماع است ده قیاس که مساله رسیدت من قضیه اختلافی جور میشد مثلا بگونیم مثلا وقت ما ی مبارک رمضان فرض است ای مسائلی که حتی با اون فاصله ممالک زرد نداره با خدیری که منشود در قرآن کریم است. در اینکه سختلاف ندارن، پاین وعده نماز، در اینکه سختلاف ندارن. از این باز مشکی بیاید که عدم فهم از قرآن و باز ماردام که مثلا مزایب من ایس حداف و خود قرار دادن. از دختر در اینجا در اینجا انسان نشتباد شواره گشتوانشان در اینجا میشه. خوب آلمات مثلا در بعض مسائل مثلا بگوییم مثال. بعضی مسائل صابت بیایید که مثلا نمی مخالف با مذهب شافیه مثلا حدیس کواردشده. ای هلت دلیلی است که مثلاً ای از خود الله‌هاي بیشوار رجع دارن. اولی که احادیث که بود تماماً تماما زمان امام ابو بنیفا و امام شافی و امام مالک جماعوری نشده بود. امام بخاری هم اولا کتاب، امام بخاری هم اولا باره ابو بنیفا را هم اولا اشتاد نه وصلبات وفاد کرد. اینه کتاب بخاری مسلم ترمیزی نسائی ابن ماجی کتب حدید از زمان بنیفا نام بود. مطمئن وجود نداشت. احادیث برای مصاحبه امروزی بود. خب، عالی مثلاً چرا داری مثلاً مثلاً به بونی مثالی، حدیث مثلاً احادیث به این شکل آمده در یک حدیث دا باری دست سینو دوست کردم. ای تو روایت میشه که از عالی دادن روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی کنایات میخوانه روایت است. دس. دست زیر ناف میبود داشت ای تو روایت آمده که بین ناف و بین سینه. و یک قسمت روایت آمده بن خزایم روایت میکنه على صدري و سوالاتم نموز میخوان در بالای سنی خودش نمیگوشت دست نمیگوشت دري علما دو موقف دارن در یک مساله ايره اينميد ای یک مثال برد میگم که کل مسائل فقهي رو باید استقیاس کرد نه بعضي نما موقف شميس که اختلاف تنوع است به اين و نه كر سوالش ميكرفم ايي كارام كردي كارام كردي كارام كردو كي اختلاف تنوع اس. يعني بعضي نما و غير اين است بعضي نما و غير اين است بعض علماء وایرا هستند که دعی سه حالات که دئی روجی و مرجوع حدمان وجود در اختلاف تنوع نیست در حقیقت چیز وجود داره که اینی قوی است خب حال یکی به که ما این ایک نفر انسان می مثلا می ادله می اطراف شگانات شارگران کلش تمهیش میکرد تحلیل میکنات ال محادیس خودش اقل مجد اگانی است کاول احادیث ضعیف باید بیرون شوه کدام حدیث ضعیف است نیست بیرون شوی خب آله مثلا اگر ثابت چه که مثلا اینی, کار اینی حدیث مثلا ضعیف است و به این مثلا یکی ای از امه استدلال کرده در اینجا کس عذر از ای امام چی چرا به حدیث ضعیف استدلال کرده؟ ای به این خاطر استدلال کرده؟ به این حدیث ضعیف دری اسباب خیلی زیاد وجود داره یک عذر ما باید اپنان عذر بینا باید وجودمات امتمن یک عذر امیه استی بین تمی با را ذکر میکنه که رحمت الله. یه گزرا می‌یاد که احتمال داره که به می طریق که بیای امام حدیث رسیده، اینمی حدیث. اینمی سنت که بیای رسیده، این سنت ضعیف بوده. در حالی که دیگه با سنت دیگه و دیگه امام قوی بوده. هو وقتی که حدیث با سنت ضعیف و امام بررسه و با سنت قوی نرسه، او خب پیش الله عزوجل معزور است. خوز عز و خوزد داره الله عزوجل. یا ای که مثلاً حدیث رسیده برش خود در امی باب بر ثابت نشده که حدیث در باب نیست در باب دیگی از یک مسئله دیگی هست این باب خیلی کلان در فقه هست خو من حیث مثال رو بر تنزکر میکنم که می من حیث قاعده پشتن همیشه باشه من حیث که اختلاف در مسائل فقهی در اسلام گنجایش داره و اختلافات تا روز اقیامت واقع میمانه به که همسید رو فهم فرق میکنه. اختلاف در چیست؟ این نیست که پایین وقت نماز شش وقت است کس خیلی نگفته در رمضان نیست، در حج نیست اختلاف در مسائل مثل مسائلی که دست سر سینه بالا شد و با دست زیر ناخ مثلا سجدی سو در واجبات میشه، در غیر واجبات مثلا یعنی بعض اختلافات در درون بعضی عبادات است و گفتیم بعض اختلافات تنوعی است که رسول اصلاح شان شکل انجا مثل اصلاح بعضی اختلافات بشند شکل انجام من اوتر قویدن موجود است خب آل اگر کسی مثلا یک قدید می داشته باشه که مسائل تحلیل میکنه, میکنه. خوب میکنه با قوی عمل میکنه خوبهزی هیچ وقت لازم نیست که کسی که به ضعیف عمل میکنه غیر از چه قرار بدهنی ها زیرشم شیرو می خاطر می خاطر که اینکه داوود بمو چیزی که به سنات رسیده او بمو چیزی معذور است پیش الله عزوج و صرف ما به با باشیم که تحشوت باید نداشته باشیم با عصب وقتی ما میخوایم خلافت اسلامی نظام اسلامی باید حاکم شویم اما نظام اسلامی در در سایه یک مذهب نمیخوایم. وقتی ما خلافت اسلامی میمونه که تمام امت ما میخوایم جمع کنیم زیر خلافت اسلامی. و آخر مذهب اسلامی نیست شافی، حنبلی مذاهب. اینا تماماً یک ثروت و گنجینه فقهی اسلام است اینها. هزار کدام میتونند استفاده کنند هزار دل استفاده باید صورت بگیرد. یعنی مثلا بگونی مثلا باید نشه که مثلا که حتی بعض علماء در این تأثب راستن در کتب خود حتی باید زکر میکنن که باز زنی که در مذهب شافی باشه و او ازدواج شراط نمیگی شراط؟ میگو یه خاطر که شافی هاک مسئله فعقیدوی هست باید مسئله معتقد استن خوب چون بخاطر کارونا مسلمان استن خیر قیاس میکنم سر اهل کتاب باید نارسی میکنم حتی این مسئله سکر ا اید دو تر مسائلی که نمیشه مثلاً کسی حنفی است باش شافی نماز نخواند چرا؟ به خاطر که در مذهب شافی مثلاً برآمدن خون کس خروج خون شکننده اجازه نیست. در حالی که در مذهب حنفی است، پس وقتی که مثلاً امام افتراز که خون را شپر آمد اخ ند احنافی مذهبش چی است نیست شکننده اجازه مصرفات اجازه نیست پس نماز نمیشه. در حالی که ما در خب بیچی مخالف نیستیم بیچی. ما مشکل سوال ما ترجمه برادر اکثر که شما تصور که ما, ما شفی می‌ده نماز زامن درمی‌ده نماز می‌خوانم ما کشته استدعا کنیم یعنی اول سوال وی است. انسان باید تصور باید داشته باشد. ما حنفي استم در افغانستان. اگر ما شفی مثلاً تصور که ما شفی دزدند كه دل الله دل آورد نماز می‌خوانم یعنی یا به می خرافات چرندیاتی که بچه بعضی مردمش بمین تندار می‌د. یا مثلا اگر ببینیم مثلا زنده شو و ما زندباز کشورایک شو، مذهب استم. آیا پیشش نماز میخوان نمیخوانم؟ از ما ماه بیایش که ببینیم ما محمد شافی، اینا ائمای دین است. ائمای دین خیلی زین تنها بیچاره نفر محصور نیست. خیلی مذاهب است، تبری، اوزایی، مذهب سفیان السعوری، مذهب سفیان ابن عینا. مذاهب بودن چون اینا اینا چاره مذهب خدمتشو توسط شاعرداشند. وغوینده شد بر ما رسیده یا ثروت های چی است اسلام است و مذهب این مدارس فکری که مدار ما مذاهب حنبلیش چیز جدا از اسلام نیست بس بسیار جدا از اسلام فکر می کنه این جدا از اسلام نیست که existence التساخ در تشکیده با اسلام است و صرف گفت مال فهم فهم میکنه اما هر کس نک هر کس فهم فهمه سن که کنه ده جاهل عرب این حدیث از تو فهم نمی نه از خودش عالیات و وسایل دارش تلاش کنن سر میتونه فهمیم خب میشه بیای باشین که وقتی که از قرآن سنت و اجماع وقتی که مثلا به قیاس میرسه در بعضی شکلات مثلا نیست در بعضی دیو خود بخود اختلاف فایده میشه اختلافات خود بخود دیو بروز مثلا میکنه مثلا بگوییم مثلا یک اختلاف بسیار بزرگ جمع میشه باهم مواجه هستیم ما این واراکر است نه سنداری جبردارای کدی مانده که از نگی میکند در پاکستان هندستان اینا اینا خسرب میاد استن که ما رویت محتاب در عرق شورک هم معتبر است. مثلا ما مکلاب بینیستم کسایی که مثلا در افغانستان روزه میگیرن ما بینار روزه میگیرن. رسانه سر نمیگه که با رویتش، با رویت محتاب، دیدن محتاب شما روزه بگیرن، حلال روزه بگیرن و با شما چی کنین کنن، کنین شتار کنن. خب آل سوال به یه پیدا میشه که یه، یک رای در آمی است که نه. اگر در مشرق و میلان شب روزه باید ده نه مغرب باید روزه بگیره این دو مذهب فقهی است که در صحابه موجود بود اختلاف در صحابه این مسئله موجود مثلا شنیدیم بگوین حدیث بخاری است که ابو کریب از از ام الفضل برخیم فرستاده بود بچی و شام عمت بشبن ابو اصدی الله انهما در مدینه در مکه در مکه در مدینه آمد ابن عباس وقتی که در مدینه رسید اینا روز اید نکرده بودن وقتی که رسید گفت که امروز باید شما اید میکردن چرا بخاطره که معوی خلیفه مدیبی معوی خلیفه بود و در معوی خلیفه در دمشه خو کرده بود امروز باید اونا اید دیدن هست مساجد شما ما اید شما ما اید کردن گفت نی گفت اونا چو وقت دیدن حلالا گفت در شب جمعه ایدن ای ابن عباس استوند ج خلیفه است. ابن عباس روایت ابن عباس اس رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی برگفت بود که کتاب الله را و ای دوای رسول الله و ابن عباس به ابن عباس میگن. بزرگترین مفسر در صحابه است ابن عباس رضی الله و یک وقت در صام فاکت عمرش خیلی خرد بود دیدید تک حرف ابن عباس میوقفش موویات هم دی موقف اداره مووی موقفش این است که ما شب جمعه ای می نامی ما شب باشیم ببینید خب اون مسلمان چه وقت مسلمان هست که مسائل فقهی است بدی جایش داره مثلا بگوین مثال ما در کشور زندگی میکنن که اکثر اهلش اکثر عائل روزا میگرن مثلا بدی دهنه دیگر ویا دیگر مناطق معتبر باشند نیست. خلاص ما هم با اینا روز میگیم. خروج خلاف اشکال میخوایم که در بکشیم اختلاف. میشه چیز؟ زشت بوده کلمه اختلاف اگر دیدم که اکثر مردم با میاس نمینیم. حتی اگر تر گو وقتی میشه که ما مذهب ما میاس، کنیم ما داریمی با جو زابیگرمی. حتی بعض وقت انسان میشه که بعض مسائل درای مرجوح میریم. چرا با خاطری واحد میشول پس موقف ما در قبال رمضان که آمدنی از چند روز بات که دری بشار اختلاف کلام پایدامیسه و حتی مسئله تکفیر بکرگم میرسه اینجزا اصل موقف مسلمان همین هست که وقت که مادا مادار کمی اختلاف از سابق برمان ما نخل شده به نظر به مفهم حدیث که صحابه گرفتن بس این اختلاف وجود دارده این کدار قضی نیست شما داری روزه با ماداری روزه شما روز روزه بخوان ماداری روز کار قدر اثر امیس که نباید قومیات و تنیات چیز من این اصل اصغر ما قال مثلا به گونه مثال بعضی بلاد در اروپا و امریکا حتی این مسئله ای قدر اثر گذاشته که مثلا تک بدر قسمی کرد در, در گوانتانامو ما به مشکل انگی موادر ولی مثلا درونی مردم کوشش میکرد که ویسا پاکستان وجر حالیکه اون در, در, در گوانتانامو کجاست پاکستان وکجاست امریکا وکجاست این بازه ای مسئله قومی جور ما اسلام نمیخوایم که مطابق احوا و میل و خواست نفسی خود بسازیم یعنی و ما همیشه در اسلام وقتی که ما مسلمان هستیم باید خداوند اسلامیز نگی خداوند ایار بشه از این دو. سعیم اختلافات فقیر که ما میبینیم ما باید دو که موقف اسلام من نمیم موقف امت چیه؟ برات کسانی که تو چی موقف داری دیوار؟ نمید موقف ندارم. دادکیبال اسلام موقف ندارم. الله وارم چی گفته که وای چینا موقف دارم تو مسائل اختیار کنم. وقتی که برادرم در پولی میشه دست به را سینام آمده. و ما دست بازی را نآمده. چی مشکلی؟ مثلا چی کنیم؟ بکشم شیر بکشیم اگر تو ناس وجود داشته و مشکل می‌کنم، اگر نه به این باشه که نه خود مسائلی است که دری راجع به مرجوع اختلاف تنها وس، یخ نمیشکل دری نداره، مشکل وجود نداره. واسه خود این ویژگی است که ما کوشش کنیم که این چیز که در باید مردم باید صورت بگیره، بی حالت باید برسه. و ما وقتی که مشکل به هوا و مایل خود جور کنیم، هوا و مایل خود جور کنیم. باز خود با خود مشکلات باز پیدا میشن مثلا بگوییم مثال، یک حدیث را با وانیفر امام جور کردن. باز احناف متهاسف. و این حدیث که دوبار خورده در یک جیبی می‌نیم. در حدیث می‌گم در امت مکه سپریدوار میشه کشوره و امتی ما نامش نعمان بن صالحت است. این ابانت فرش با دروغ در رود نداره. یک نفر متقی و پر پریدگار کسره که الله برش قبول در امتان دقت کرده و اکثر احیا سنت فیلن طوی مذهب حرفی است. او با دروغ ما تو در رود نداره. خب این حدیث که تکمیلی دی داره در حدیث واسه میگن که در امتی ما کسی ظهور پیدا میکنه که ضررش از ابلیس هم که زیادتر است نامش محمد بن ادریس است یعنی مقصری ما شفیع هست ببین انت تعصب به کجا کشان دارید که تو پیرو امام استی او را بهتر حالت مثلا برسانید در در مقابل امام شفیع المطلبی القریشی امام از ابلیس اون که است یا مثل که امام میگه از متعصبین در در کتابش میگه هر حدیث و هر آیاتی که مخالف مذهب ما باشه یا منسوخه یا مواوله یا نمیدانیم قسمه یا هر قسمه خب الان مشکل می پیدا میشه که بر ما میزان قرآن و سنت است علا فهم سلف نی فلان و فلان و فلان برما ابن عباس بکس مناظره میکرد و خاتمه میتن با سوال لے استقبال اول میگه ابن عباس بکس مناظره میکرد یک مساله برشمی گفت که قال الله قال رسول می الله و برش گفت که الله و رسول ختمه خو ابو بقر امر ایتو می ابو ابن گفت قسم بالله دیگفت ما می ترسیم خسر دو سنگ نباره سنگ و ببرای تو بگم الله رسول نگد برای ابو بقر امر جیب و جیب که الله رسول میگه تو برام میگه مثلا میگه عمر رضی اللہ در مجدد ساب میگه تهدید مهر میکنم ببزن آیا یک تهدید میکنم تحديد شوام؟ اگر میشه کلمه تهدید مهر میکنم بباز، با یکی کسا کسایی روایت ضعیف است خوب آرها لیس لال شده میتونه میگیرد، بعضی کسان میگن جنبی مسلمان وقتی ازدواج زدواجی میکن عمر میره شیطان چاپ مے کو نظر دیگی مے کہ کسی کہ رسوولہ مے گفتا کہ اس اہل جنت عمرن خطبنی یک زن مے خذ برسمے کہ اے عمر چیزے کہ بلا برما اللہ رسول تحديد تعین نہ کردے تمی کار کرن مے جانو تو جوید بیش آ تو عمرن خطب مے کہ میں قسم بہ الله سگ میزن نہ می بود مے مہلاک مے ش چیزے کہ اللہ رسول تحديد نکرده که کہ بایدنے قمر بو تو کہ دا احمد نے تحديد تعین حرام بو جے یا مثلا به خذیه از اینکه وقتی که خلیفه میسه برای صحابه میگه اگر مکت چه هم انحراف کنم از را چی میکنم؟ یک کسی مرد به سر جوان شمشه برون میکنه میگه با این راستت مثال نیم باز یک مرد بسیار سال خورده با اصا چوب خدا بلان میکنه میگه با این راستت مثال نیم عمر مخاطم میگه الحمدللله شکر است جای شکرون در اومت محمد صاحب صاحب صاحب کسی هست که منحرف خلیف وی راست میکنه اسمت با اسمت صحابه که سخائل نبود این قضیه اسمت تقدیس اشخاص اشخاص مقدس ساختن میگه یک وقت مشکل در جهاد افغانستان با راهبرای با مشکل مردم مواجه بدن حتی یک این ای تقدیس اشخاص که بذ کسی شخص مقدس جرجونی هیچ چیز در اسلام مطلب اون وجود نداره هیچ ای چیز نیست پس قد رسول الله علیه و بیا که شما معصوم است هیچ حتی اصحاب معصوم نیستن اش سوهاست خطا است روخ رو خمیدن. و کسی گباره زی ما ما داریم. خاله ترین اسلام با یه خیل جنگیده. رسولت سلام میگه که ما را در ما غلول نکنند. این از میگم ما فقط بگویم که کی هستم عبدالله و رسول. بندی خدا و رسولش باز رسولت نمیگه لعن الله یهود و نصارا نت کنم میگه الله یهود و نصارا که اتخاذ قبور انبياء هم مساجد قبر انبیاء ده مساجد ساختن لعنت کنم میگه یهود الله یهود نصرالارا هنیه ایمان که غلو در دین، شخصیات بلند صحبت نی، که بوخانی که جامعه المعقول و المعقول نمیدانم که یک علاقه بیشتر بزرگ یک نفر مثل خن بدون انتبLANDش میکنی بازمانده میکنی. از یک خاطر ببینن کسایی که همیشه غلو کردنی بیاد دست به جنس قیده، کسایی که در رهبران یا در مذاهب غلو میکنن، با که اندک انحراف میکنن باز انحرافشون خیلی خطرناکه. به یاد یک کشور، از یک رسواسه دار میگه حالک المتنعتیون. مردوم متشدد ی فرات میگه حالات شدهن حالات وی خوارجی صفاتشان رو حالات غلو ما در دین نمی کنیم نه در صحابه می کنیم نه مثل شیعه علی و مثلا علی مثلا علی اسماعیلی به تقاض که می غرش نیست را به بات ما و بابا غوری میگه میگین میز आवाज علی یش می بینه غلو در تقالات میرا مثلا مثلا خمینی میگه ما ائمه ما تک مقام دارن که ده اون نبی رشنم ده نه فرشته رسند دی غلو حبیبین در دین غلو در دیما سه روزه می‌نیم، بچه خالات ما سه می‌رسیم. این چیز در اسلام متفاوت مرفوظ است. غلو در اسلام رسول صلی الله علیه و غلو که رسول وقتی که مأزیب نجوا آمد بر رسول صلی الله سجده کرد. سجدیه بعثت نبود، گفتم مردم شام جریم که بزرگترین شکل تازی می‌کند، گفی کار دیگر نیست. ازیک خاتم رسول صلی الله چقدر انسان متواضعی وقتی که در مجلس داخل میشه در موجای می‌نشست، می‌شه خالی بود دیگه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منم میکردی میکردی که اگر کسی بخواهد که مردم برش بار خیزد. کسی نیت شمیه مردم باید بار ما بخیزد. من النار. جای میگه در اختیار خود جهنم در, در اختیار تکبر در اسلام نیست. عالم و نجار و الله ناکامم کو من دلهات پااق کو ببتش شما از الله متقیق متقیقه است مار تتحدید کردن و می کاامین که ما انسانانه تحدید کنیمیملا در بعضی مظاهر مثلاتحدیقی متخیص خب قال سوال به پیدادا میشه و گفت اقسم مظااهر مظاهر غلو است که اسلام با بای مبارزه مثلان کردنی حتی بعضی مظاهره صحابه می گفتنی مظاهر عجمی است مظاهر عربی نیست؟ مثل مگونه مسلمان کسی مشاهده می‌کند که بشار از وانه موسومه یکشال خلاص با حالات اسلام مبارزه که دیگر با شورت نگیره ویش. این تجهالات که میشه حق یک نفر حداقیش، حق یک نفر حداقیش. نه مرتبی اولویت میرسه مثل علی رضی الله عنه. نه بوم مرتبی مثل خوارش کلی منطق متقل اسلام بیرون کردن. از خوارش کلی اسلام بیرون کردن گفی کافر است. نه ود من الله. کوشیایی کردند اینجا متقل بلا ترکه. نحن اسناد موقع وسعت. صحابياس، yes yes، مباشر راشداس، مبشر بالجنة، موجب جنة دارشته، فسر القواعد، دعامات الرسالة والسلامة، على السنة ده. ان شاء الله بإيجاد اختلافات حال مش. ودري إنت بات، أنا ما أقدر أقول كتاب وفشو كيس الكتاب ترجمة كرده الشيخ خالد السلاوي تيبر رحمه الله رفع العلم، أنا إما في العلم كيس ترجمة كرده كتاب وفشو، في مسائل اختلافات. ودري بكتيرين اگر کسی میخوا همتوالاکن احتمال در در, در بازار فایداش با اوه بنامه انصاف در مسائل اختلافی شاوریللوی دهلوی رحمه اللہ است. ناسیم فقریه کسی ترجمه که ده محمد ناسیم فقریه انصاف در مسائل اختلافی کتاب بشار زیبا بار شاید افطاده بشتال سفی بارش مختصر ایه خواب امامان نقطه ایه مرکولان افطاده در در در این نامان و مدارس مذهبی بودن که مسائل استنباد میکردن مسائل از خانشنال میکردن می کردن مسائل بنجاینده میشد. مثل مدارس که فران موشمام از داریم و همیشه کهی مسائل بازموتو نسل به نسل انتقال پیدا کرد خوصا در جایی که حاکم شدن امی شاگرداش ابو یوسف رحمه الله مثلا قاضی بود در زمان هارون رشید شاگرد مبانیخه رحمه الله است خود خود مذهب از مجتهد ناشه برداشت. چون به خاطر قاضی بودنی و كل فتاوای اعتماد بر فحم بن فرحم الله کتاب السنه باش. از ابن فرحم الله نقل قاله می است اگر قول ما سخن ما مستمماً مما ذکر است اگر سخن ما مخالف با قرآن حدیث می باشه سخن مرب را دیوار بزن و تمسوک بچگو به حدیث. ایام شافیه رحم الله و امام محمد و امام احمد و امام علی الشنا درید شک نیست. یعنی به این معنی که ایج و خامنهان گفتن که تمام نزمه باید چک نی مطلقاً نیست که ما میخواهیم خمازم پیروی کنی بلکه ات در مزده به کسی خیلی عمیق شد در مزده به حنافی اختلافات ابویوسف و شما ببین با او نیفت کدش اختلاف داره در مسائل فقیه باز اختلاف محمد محمد الحسن الشیباني رحمه الله با او نیفته در مقدس واحد اختلاف چیم واید اختلاف شد ادمیله لازیه فهم نی همونا کسی کسی را تکیه میکرد نکسی کسی را در مقدس بیرون میکرد فهم مسائل فهم جذابت مسائل کرد. بینن ما از بالاتر بترن با مسائل در مسائل آخرین بین صاحب اختلاف بود. مثلا در وقت در میراج اختلاف برکایا الله عزوجل، رب خود دیده آنگرده رسول خدا. دیروز صاحب اختلاف بود. دریک رسول است که جسمان روحان رف، تنها روحان لف دری باد دری بین اختلاف در مسئله اخ باقی دم تماس اخ کوچون اختلاف در اینجی کنجایش چیز وجود از خود انسوس. اما قسم فهم گرفته میشه. خلاص به این چیکردن که از نتایج فیلمش ما کسی را کافر بگیم. ای کویمی چیزی که انسان یکی دانش، دانش تحمل باید باید ما باید در خود پرورش باید بده و این وقتی میشه که ما باید بفهمیم که مذاهب کیست، تمام ائمه کیست. و امروز ائمه وجود دارن. خو برتن بگیم نه حال در حقیقت ما اکثر که ما حنفی استیم. ما در حقیقت حنفی نیستیم. ما در لحظات مذهب امام مسجد ماست. این نبوتیم الله مولانا میگه از اول ما احنا فرمیم مذهب عامی کسی که فهم ندارد مذهب ایمان مسجدش هست میگوشه میفهمه که وانیفایی مسائل استروغ مثلا کس پرسان کنیم که امین نماز خوردم میخوام بیش باگوش مثلا میزنه از مثل در ناف میمونیم یا مثلا در دکه چه دلیل داریم این چیز؟ نیت اندلاعی نداره اصلا این نمیفهمه که برایش که ابو ابوانیفار احمد اسمش چی بود؟ از این بحث کشناهی نداره خود تمام اساله خود کی میکنه زیمامو مسجد میگنی؟ و احتمال ایمان وزرد ایک مذهب دیگه باشه امکان جاهل باشه احتمال بسیم در مذهب از او یعنی اطلاق از که هنفی هست برای ما خود یک چیزی کلان مذهب بازو مثلا در مذهب ایمان مخورد هست بل خاطر چون به خاطر ام شگیل من مذهب ما و یستم کی تقریبا مسادر بوکسن خلکه تقلید و غیره تقلید یا قضیه جور کنن به خاطر مردم حرام است نه دیگر قضیه نمیذاره جور میکنه دیگر باز نه قضیه حاکمیت ک الله و باید حاکم باشه والا و برا باید کی باشه یعنی از این که انسان باز پایین شه و بس شیطانم جو انسان بس مصروف نگاه میکنه مثلا به یستم کی قضیه گذاشته باشه چرا اگر مق... اگر حنفی استی حنفی باشه. اگر حنبلیس، مردم خیلی علماء کلان هنفیم شافی بودن این اشکال وجود نداره. اگر اهل حدیث است احل حدیث باش ارهال کم اخدام بایی شخصا بایی مستلام مخالف است هر مسلمان اهل حدیث است آر مسلمان سلفیاست، آر مسلمان با سلفی باشه. یعنی سلفی با ایمان که ماد، با صلاح خود باش و در جوب بازگشت بايد کنه. آخر همیشه اهل عادیشون ها لجنام مثلا نموندند اکثرا نزیم خونه زعفران کسی مثلا مقلد است یک مذهب باش یک کسی مقلد یک مذهب نیست. مقلد چیه؟ خدیگسی آخرشیست مبادا دست خدا را باش. همایه استم که صرف تعصب باش دور کنه. این چیز نباشه. خلاص ما یکس نمیتند. بیشتر نقاط مشترک با ایمان ما وجود دار ایمان با الله و ملائکات ایخ اختلاف نیز بیشتا بین سریعی مسائلی کار میکنی که قرآن اول حاکیم باشه حدیث رضا سن باید حاکم باشه والا و ذرا بخاطر کی باشه بعضی مسائلی ایس که ایتا قیامت مثل که روی زن او راکتا زیان نیزی بین قضی در بین ایمان تا ورز قیامت تی مسائلی کسی مطلقا حل کرنه شما باشد اگر به این کسی فکر باشه که مسئله دست رسی نا و زرنافی حل میشه حال, حال شده راجع و مرجوع معلوم است اما ما نمیتن به کل مثلا مطلق به ایک مظهب داره اصلا کار است که از چی بشر بیرون است از تحمل از طوان بشر بیرون از چی چیز گفته مثلا در صحابه اصلا در صحابه کسی بود ابو یوسف ازش نقل قول بشه که حروندشید مظهب شی بود که وقت خون از دستش بی گسه بو یوسف پرتاکه ته خود در مذهب تی که بیرون شو شوا از مجایش بیرون شو و وضو میشکنه تو پشت ارون رشید نماز میخوانین بعض گفت که وای ها گوای برتو تو لو نفر ده و وای بر که ما امیر مؤمن نماز نخانم پشت خلفی و سلام الله علیه نماز نخانم اس پیجت زیرو خرافات بر ما آوردن بر نمیکنم حال وایس خو انسان در تصور همیشه در تصور میایم کسی باک بک مذهب اختلاف درو گوگیم شو پشت نماز میخوانن این بیچاره جواب اما از ساقتش ماذا غيّنتم؟ والله زوجنا ما شاء الله توفيق بجيبتكِ المدينة أصل كنّم فهم أصل كنّم وما أمي شاف يجيب أشيّم القرآن برمى مني كي لقد كان لكم في رسول الله أصوات حسن لقد أفتى فيها بهنّيفة. في أحمد النقوخ مطلق النقوخ في رسول الله في, أبو بكر وأمر. في رسول الله في أبو بكر و في رسول الله قصد حسنا ما ربي الله عز وجل التوفيق بيبتك ما فهم السنة برما أصل شاء بفهم السنة اختلافات المزهبيك خد بخد برده اجتميس إنسان إنا ما أخفها خدهم هزاها ليس مثلا مي خالم ديد إنسان روز بروز وستار اجتمي رد المساعد خب ببستار مثلا تن إسلام مثلا إسلام أغوش خيلي كالعن برده مشاالله هم میقدر خدمت کنه کیقدر خدمت الله نه چی آشنا چی زبان آمی کلمی کلمه محبت یک میفهمی کنم نیست محبت مثل کلمه‌ی اخوانیات چیز واهورا محبت متقال وجود نداره محبت یک حرکت مد 20 سال بجلد. خلاص دلقه. مسلقال مثلا ما بوگو ان اتحاد اسلامی یا تاز دشد شالبا دموگو متہال اسلامی را خلاص نه نلغم تغییر دادن چیز یک چیز دیگه مثلا ما نری تین چیز مثلا نه باشم قالو فلانی بنا بره دی مثلا سبب اسلامی اس کی گفتم عبارت کہ بعض برادران میگو بگو بوگو یعنی موقف شنه باشه ما موقف ما می است که ما اشتیاق له حدیثا و نماز می خونم به مالکی الا اس کیسے کہ ازش مرتکب کفر شدا باشه کار کسی که باشه امروز اگر کس در افغانستان یا پاکستان در, در پیروی امریکایا اگر از بزرگترین علماء اهل حدیث باشه پشش نماز نمیخانه و اگر بزرگترین پشش نماز نمیخانه ما موقف ما میبیز اگر دو نباشه مرتکب کفر نشده باشه پشش نماز نمیخانه سفراداله دیگه سواد که مختص بمدون مسئله سی مسئله نشانه مم. اسلامیی اشتاد که در طرفین کس مردم متشدد پیدا میشن دریه چیک نیست طرفین مردم افرادتی دارا اولو طرفین مردم مثلا بازه کسا عشتن در برادرهای احل حدیث کی افراد میکن کن بازه کسا در ایش می اما اصل موقف یک مسلمان باید چی باشه؟ ما باید در زید دو ترازو همشه باید متحصر شیم. همشه موقف ما باشه موقف باشه که در اقتصاد به بنام نوسان هست همیشه یک شکل همیشه نداره یک شکل باید ما نداشته باشیم نوسان باشیم یک بار با افراته احل الدیس یک بار با افراته مقالدین نی ما من حیث مسلمان قرآن بر ما چی موقف عرضه میکنه که ما باید موقف باید داشته باشیم حتی در مقابل متشددین بیویدن علی رضی اللہ عنو تکفیر کردن خوارج ما را حدیث تکفیر نمی کنم اینکس تکفیر نمی علی را تکفیر کردن گفی کافر است وقتی که به شوال بردن گفتن که خوارج دور تکفیر میکنه گفت بعد خوارج چی موضع داری گفت اخوان و نافدین بقوا علینا برادرای در دین که علی ما بغاوت کردن گفت نفاق گفت منافقین نیستن گفت لا فروا من النفاق گفت فز نفاق فرار کردن قفا منافقین قرآن کریم تلاوت میکنن زیاد به مساجد گفت شتاب میکنن قرآن میگه بناماس نماز که خطاب میکنن کو سالا میباشن یا کو سالا نیستن میکنن منافقین لا یذکرون الله الا قليلا. در که خوارج خیلی چیه خب آل موقفه است که اخواننا فی الدین بغوا علینا مثلا اگر ما اصلا افراد مرض است افراد در هر چیزی که باشه مرض است خب آل سوال به یس که اول کلمه افراد شما و شما در مجلس مانیک نکاله ما امریکا هم افرادی میگن در بشار مسائل عادی افراد در اصل افراد که مثلا است مثل خوارج گذاشتن خب آل موقف ما من عیسی مسلمانی باشه که اگر کسی متراق موقفه گرفت درفی مقابل تکفیر کرد ما تکفیر نامک می موقفه ما باید نباشه چرا ما در هر شناد قاعده داریم که بدعت به بدعت باید درت نشه کفر به مثلا نفر کافر شما نه رئیس بخاطر انتقام اون کافر شه یک نفر مبتدی هست من باید فقط مبتدی شم بخاطرنی موقفه ماقدر موقفه باید سالم باشه موقفه یک مسلمان که از طرفین ما باید موقفی باشه که موقفه قرانی باید باشه و با اینا باید با قسم من باید چیکونه معامله باید کنم به قران ما رسول صلی الله علیه و حلقه در مقابل کجا که در دردین میکنن حتی رسول الله صلی الله علیه و سلام میگن در زمان رسول کسی آمد بر رسول الله گفت که تو در غنیمت عدل نکاری دیدی غنیمت عدل نکردی. رسول الله برگو گواهی بر تو ماعد الک نکون فیک عدل میکنه یک صحابه گفت که اجازه بده گردنش بشن گفتنی نماز نخان نه خواندن نماز در اینج برجه شود که باید خونش مو رسول الله وقتی که می رفت بیرون وقتی گرفت رسول گفت گوف ازی کسای بیرون میشه که شما نماز قرب بش نماز حقیقی میشمان روزی قرب پیش روزی است قول قسم از دین میبران مثل کمو پرنده که تیر بزنه بعد تیر بیرون شه می مردم خوارج بودن خوارج بودن کنا پسان بیرون شه تشدّد همیشه حل داره بس کسی که گمراش گماشه دیگه ما مگینند ما ما گمراشه علاج اصلا می استاد ور بگویم که در امت اسلامی بسیار امراض است اگر ما مثال ملت ما مثال برتون میدم نمونه مثال اه. خب کی ماده کی الحكم الا لله اللي الحكم الا لله کس کلمه حقرید به الباطل کلمه اقصای قرانی و مقصد خوارج باطل بود مثلا بگونیم مثلا وقتی که میگه محاکمه ما که میگم دموکراسی کفر است یک شما چیزی میمون اصلا اسلام مطلقن بو چی سازش نداره که با دموکراسی سازش کنه عدالت بین نمی کنه که من خوارج شدم اسلام باید تطبیق شه <تصفح> یا بزرگ‌ماه یا مشکل ما یه استاد کی که کارم نده فکر مسئله. یکی بعضی مردم مسئله حاکی می‌ده مدت‌ها می‌کنند خودن در سودی مسائل غیرت مدت‌ها میشه. دری پاکستانی مسائلش مدت‌ها غیرت میشه خودن از بعضی کسایی که سلفیت منشوب می‌کنن، به کی سلفیت شاید سلفیت شیطان باشه. که با مسلف شیطان این مردم که استن ما با این آخره دم نشستیم. اینا امیر قاول است که اگر کی اتهام میگن که حاکم قوانین انگلیسی در کشور حاکم کنه کافر نیست چرا به خاطر میگه یه قول ابن عباسه کفر کفر اگر بگه این کفر است میگه تو خوارج استی سرکار ما با این مردم در میدانهای جنگ است اینا علما چلو هستند اینا دو حالت دارن یا جاهل هستند نمیدانن که نباید در مجلس باید متصدی فتوا و باید شورای کسی که نمیفهمه یا کساستن که متجاهل از طرف بعضی مردم که در مجلس خوصا با کسی که با اینا ارتباط در فیلن آل چی حرکت داری عام شکل در باز السلفیات در پاکستانی پایداش دار کیچی دیست یا مثلا امالات استشادیه امالات انتحاریه سیست این چیزها خیلی صفصتات و خرافات اینا خیلی زیاده است الله عزو جل موشمار کنه در حدیث ابن ماجمعه که در آخر زمانت و فتنها میشه فقط الله دو انسان با علم زندان اگه همی با علم. ما من حیث یک مثال بارتان ذکر کنم جای بودم برما کسی گفت که در جی چینل تلویزیونی پاکستان است گفت که برنامه را مانده بدن در این که اوادس یادی او سبتمبر کسی اوادس خود امریکای را در پشت پاره بودن مرگ او به برای چی میگم من برایش خندیدم حمدا کردم گفت چرا من گفتم قسم به الله خود بوشم بو می کار کردیم میرم اوه ما مطلقا هیچ چیز بوش کذاب است کذاب گفت چرا من گفتم ما ما بالبیا یقین ایمان کامل دارم کی کار کسی کرده کو استق ولح جدا لا وجه الارض بشه گفتقدر الله جید ست قدره من گفتم تعجب بگی که ما نفر کافر و دروغگو و شیطان و ما تصدیق و که اینجا مسلمان است و که اینجا صادق است ما ای رچی میکنی وی حلیث رسول صلی در آخر زمان مردم کاذب و مردم رازگوی, مردم رازگوی است مردم رازگوی مردم میکن کاذب است نی وی ای امی فیلن امی آلت اعلامی که است یا خبری که ما شما میبینیم شمول علماء شو، اینا اونمو سحری فرعون استن سحری فرعون است و جالبی در قرآن کریم لفظ حبال آم ریسمان هم میگلنی کیبل در چی برش میگرنگ نیسی سینین هم که شما همی چی کنی؟ کیبل نیت ورک نیت؟ که امید امید کیبل هست همی حبال علقه من كي. كي و حبال هم و هم حبال هم انداختن عصیه هم و عصایه هست که بزور سر مردم همین قبولا آلا ایو رسانایی چی؟ از این خاطر ما دیشب با در اوماج جیس ما گفتم که شما بایی چیزا مطلخن گوش نیتن قدرت تحلیل اخبار نداره از نگاه اسلامی نبی بیشی گوش کن ساده آمریکا نه آشنا نه غیر آشنا تحلیل ندار نمی تونه تحلیل کنه مشکل بیقتی ناقص فد انسان بفرد نه سردردشار مقدس قرآن بی بر صحابه میگه وفیكم سمعون لهم اند الصحابة که شایستند که بونا خیلی کوش بدن به منافقین که ما کنه صحابی است منازل رسول سلام بر خوردار است یخود دل بیم گوش که ما الله خير